بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله والصحبه أجمعين أما بعد افده من درسة درسة سورة يوسف ويجعل فرمدي الله جل شأنه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون در درس قبلی اشاره شد به بحث یاداوری یوسف به اون دو زندانی که همراهش بودن به توحید الله جلش شانه قبل از اینکه خوابشون رو تعبیر بکنه دعوتشون داد با توجه به اینکه جامعه مصری در زمان یوسف آلوده به انواع شرک بودن شرک به خودمون در اونجا قواقا می کرد اون ادعای ست خدایی هر قبیله برای خودش خودشون خدایانی داشتن یوسف یاداوریش میکنه چون اینجا یوسف مقامش مقام نبوته و این دعوتی که الان داره میده یک دعوت الهیه اون چیزی که الله برایش وحی کرده اون چیزی که مطرح میکنه بحث عبادت رو مطرح میکنه میگه ما تعبدون من دونهی الا اسماء انسمیتو ما تعبدون من دونه یعنی من, من دون الله اون چیزی که غیر از الله دارید میپرسید اینجا پرستش مستقیم نبوده یعنی که خودشون بسقیمنون و بوتها رو میپرستین فکر میکردن همون بوت خود خداست نه ادعا داشتن این بوتها یا این مردگان شفیعن شفاعتگرشونن واسطه شونن همونطور که الله در قرآن میگه هؤلاء شفعاونه عند الله شفیع ما هستن یعنی الله یا جای دیگه در سوره زمر میگه و من عبدهم الا ليقربونا قربونا الى الله یو قربونا یعنی ما نزیک بکنن به الله مثل همون بحث یقویث و از قوم نوح که پرستیده شدن بعد از اینکه اشخاص صالحی بودن برای یادواری یادواره از اونا بر سر قبرشون گذاشتن که یادشون باشن و تبدیل شدن به مرور زمان به بوت به واسطه بین خودشون و الله خب الله داره میگه ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتوها مجرد یک نامه که شما نامش گذاشتید حقیقت و واقعیت نداره مثلا یک شخصی اسم خاک را میذاره نان چی خورده میگه نان خوردم نان خورده بود نان خورده خاک خورده ولی خب اسم خاک را گذاشته نان نان ما میدونیم چیه یه شخصی اگر بیاد اسم خاک را نان بذاره خلاف واقعیت خلاف عقله خلاف خرده خاک هیچ وقت نان نمیشه هرچند که اون آرد بر گرفته شده از خاک ولی خب ما اون آرد که داریم که نان باش پخته میشه از گندم رابطه به خاک نداره یعنی از لحاظ کیفیت و از لحاظ اسم منام و مسمى در واقعیت پس اینها این خدایانی که اونها قرار دادن مجرد نامن واقعیت نداره حقیقت نداره هیچی نیست. یک اسم براش گذاشتن هیچی نیست. این اینبیارزش کردن اون خدایانه. این اون خدایان فقط مجرد نامن هیچی ندارن هیچی نیستن و واقعیت همینه ما هرچی داریم از الله داریم. ما چیزی نداریم. ما از خودمون مگه چیزی داریم مثلا این گوش خودمون درست کردیم برای خودمون چش را مگه خودمون برای خودمون درست کردیم. ما کاری ای هر چی داریم ما الله. هرچی داریم الله در ما آفریده و هر کسی که آفریده شده باشه همونطور که جرسی گذشته گفتی مستحق پرستش نیست هر کسی که عیبی نقصی درش هست مستحق پرستش نیست این خطاب یوسف در دعوت این دعوت الهیه که تمامی پیانبران الهی داشتن الله فقط کامله الله فقط آفریننده هست چون آفریننده هست چون کامله مستحق عبادت و پرستشه این درسی که داره یوسف میده و بحث خداشناسی اینجا نیست چون اونا خدا رو میشناختن بحثی که مطرح میکنه یوسف بحث عبادت ما تعبدون بحث عبادت را مطرح میکنه یعنی مشکل اونها در عبادت بود یوسف اومده علیه السلام عبادت اونها را اصلاح بکنه موها این نام هایی که گذاشتید این اشخاصی که دارید میپرسید خودتون قرارشون دادید شما پدرهایتون خطاب امت مشرک زمان رسول هست, هم هست. لات و عزا و منات و ایصاف و و شما از لهای تاریخی نگاه بکنید خدا باید از ازل باشه نباید به وجود اومده باشه الله باید کم تو از صحابه سوال کردن از رسول الله صلی علیه و سلم قبل از آفرینش خدا کجا بود؟ رسول الله عليه و سلم تفرمیدن تقن الله ولم یکون قبله و الله بود و هیچ کس نبود قبل از الله الله ابتدا نداره هو الاول و الاخر اول و آخره ابتدا نداره ما ابتدا داریم اینجا اشاره ای هست از یوسف این خدا یعنی که شما میپرسید ابتدا دارن دارن یا نه یا از ازل بودن، از قبل بودن شما به وجودشما، شما اسمش گذاشتید خدا شما واسطه قرارشون دادید چیزی که محدودهی زمانی داره مستحق تعظیم نیست، مستحق عبادت نیست هر کسی میخواد باشه، هر چیزی میخواد باشه فرقی نمیکنه. کس چیز زمانی برای خودش داره که به وجود اومده پس محتاجه، پس خودش نیازمنده نبوده قبل همه فکر میکنن که مشرکینه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همشو بت بود پرست بودن نه اینطوری نبود اونا همه لات رو نمیپرستیدن همه عزه رو نمیپرستیدن هر کدوم از اقوام قرهش یک بطی رو برای خودشون داشتن بعضی یا افراد و اشخاص رو میپرستیدن مثل عیساف و نائله عیساف و نائله دو تا فرد زناکار بودن فاحشه بودن عیساف مرد نائل هم دختر اومده بودن به قصد زنا که بیان در خانه خدا زنا بکنن یکیشون الله به خود خودمون خشکش میکنه در صفا یکی دیگری هم در مروه صحابه تواف میکردند بعد از اینکه فتح مکه شد رسول الله صلی نابودشون کرد اون پشزادی که خوش شده بودن تبدیل به سنگ شده بودن از ایساف و نائل را برمی داره صحابه دلتنگ میشدن که ما قبلا اینجا بت بود روی بت میچرخیدیم بیاد یاد اون می افتادن بت نبود که مرده بود و بود چون فرق داره بین انسان و بین وثن خاطرهم رسول الله صلی از دعاهایش در هنگام وفات چی بود اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله وثن یعنی مرا و قرار نده یعنی اون کسی که پرسیده میشه که پرستیده بشم که کسی بیاد از من واسطه بخواد میونجگری بخواد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله که من يوم صدا زده بشم عبادت بشم عم چون دو عبادت بشم. عبادت باید خالصانه باشه لله الدين الخالص عبادت باید فقط خالصانه انسان از الله بخواد در شعن صحابه وقتی که طواف میکردم بر سر صفا و آیه نازل میشه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او فلا عليه ان يتطوف بهما لا جناح عليه ان يتطوف بهما بهما یعنی به ایصاف و مروه در صفای مروه صحابه احساس حرج میکردن اینجا اینطوری نیست که تو رفتی حج اجازه داری که طواف صفای مروه نری نه نا وظیفته که بری ولی خب پس چرا الله گفت لا جناح اشکالی نیست که بر صفا و تواف کنن در صورتی که فرزه رکن حج حجته قابل قبول نیست اگر طواف صفای مروه نکنی چرا چرا گفت اشکالی نداره چون بحث بحث تصحیح نیت اصحابه ای صحابه به دلتو نیاد اشکال نداره اگر قبلا اینجا بود بود می کردید این بودتو رو دیگران برداشتیم و اون چیزی که در جاهلیت انجام دادید اونجا باطل بود اونجا اشتباه بود مشکلی نیست که شما الان توافق کنید پس مشتکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنها کسانی بطر را میپرسیدن کسانی مرده را میپرسیدن چه مرده نشعت داره از لحاظ ابتدا آغاز داشته اول نیست زمانی داشته برای خوش به وجود اومده و آخری داشته از دنیا رفته این نکمیت و این همیتون خطاب الله به رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که میمیرد نقص داره نمیتونه خودشو نجات بده مستحق پرستش نیست مستحق نیست اینکه تو صداش بزنی او را واسطه بین خودت الله قرار بدی الا اسما ان سمیتموها انتم و اباؤكم اینها شما درشون ادعا کردید یعنی این ادعا رو شما ساختید اینها شفیعن چه نام واقعی اسمش لات عزا. چه واقعیتی که بهشون نسبت دادن اینکه آقا پیامبر شفاعت داره ما هست بله در حدیث اومده شفاعت میکنه رسول اساساً در روز قیامت ولی اینکه در این دنیا شفاعتتون میکنه بر سر قبرش چیه میان استناد میکنن بفرمایید الله ولو انهم الظلموا انفسهم جاءوك خب ولو انهم الظلموا انفسهم وقتی که ظلم بکنه ولو انهم الظلموا وقتی که ظلم بکنن بیان نزده محمد استغفار بکنن و تو هم استغفارشون یا تقاضی مغفرتی که دارن تو هم بپذیری در لغت عربی ولو انهم از ظلمون از چه موقع میاد؟ اذ با ازا فرق داره از وقتی گفته میشه وقتی که تو زندهی بیان پیشت اصغاهی بکنن تو اصغاهیشو قبول کنی الان رسول هسته زیره خاکه از کجا میدونه که عذرتو پذیرفته یا پذیرفته وقتی که رسول تبوک اومده بود در مسه نشسته بود منافقین وقتی که می اومدن حتی اون صحابه‌ای که عذری نداشتن اومدن مثل هلال و کعب مراره اومدن گفتن رسول ما عذری نداریم اومدن نزد رسول الله اون حرف سخن و قضاوت رسولش نیدن تو اینجا قضاوتش چطور میشنوی خب میگن نه مرد می مرده خب میشنوه مرده میشنوه آیا این درسته این حرف ما که مرده مطلقاً میشنوه کجا کی گفته مرده میشنوه چون صدای پای دمپایی میشنوه چون رسول الله صلی الله علیه و آله رفته سلام کرده بر مردگان سلام ما در نماز میگیم بر خودمون و بر ملائکه و بر خلق خدا السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین سلام عبادته آیا چون رسول اصلا صلی الله علیه و آله رفته به قبرستون گفته السلام علیکم حل اهل دیار المؤمنین آیا دلیل بر اینه که مردگان میشنون نه سلام یعنی دعا الله سلامتشون نگه دارد در این قبرستون صدای پای دمپایی را میشنوه اون موقعی که روح بهش قبرش برگشته بلی میشنوه ولی آیا مطلق صداها را میشنوه همه صداها اگر صداها را مرده پس چرا رسول الله صلی الله علیه و وسلم میفرماین کسی اگر بر من سلامی بفرسته فرشته موکل تا سلام شما رو بر من ابلاغ بکنه اگر خودش مستقیما میشنید چرا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در حدیث صحیح میفرماین فرشته موکل موکل هر جایی شما سلام بر من بفرسید من اینجا بگم یا اونجا بگم زین العابدین شخصی رو میبینیم نزدیک قبر رسول الله الله علیه و وسلم سلام علیک رسول الله سلام علیکم بعد میشینیم بنده خدا زین العابدین فرزند علی بن نبی با برادر حسن و حسین میگه این فلانی والله که توی که اینجایی و اون کسی که در اسپانیا هست اندلس اون دوران تا فتح شده بود گفت والله توی که اینجایی اون که اون در اون مغرب زمینه با هم دیگه فرقی ندارید. چی اینجا سلام بکنید چی جای دیگه سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلام فرشته موکل که سلامت را بر رسول الله صلی الله علیه و ابلاغ بکنه نه در جنگ بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام با ابو جهل و اینا سخنگو گفت که ابو جهل دیدی دی چی شد فلانی دیدی دی دی چی شد بله در جنگ بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام اون موقعی که ابو جهل کشته شد ایستاد و امرمون ختمم هم یا رسول چرا باشون میگی رسول الله صلی الله علیه و سلم که انت بمسمع منهم الان ای عمر تو الان شنوا نیست یعنی یک معجزه هست همیشه که نبود مگر همیشه رسول الله صلی الله علیه با مردگان صحبت میکرد سوال ما اینجاست چرا الله در قرآن گفت انك لا تسمع الموتا انك ان حرف تاکید تو ای محمد لا تسمع لا حرف نف تسمع الموتا نمیتونی بشنوانی مردگان را یعنی چی شما بیاد برام تفسیر بکنید نه این مقصد بوتا هستن الله نجا بوتا گفت مردگان این انکلا تسمع الموتى مردگان گفت و ما انت بمسمع من في القبور تو ای من اینجا دارم یاد می کنم دو تا آیه چرا ما حدیث را میاریم می خوام را رد بکنیم آیا را چرا باید رد بکنیم و ما انت ای تو ای محمد و ما انت بمسمع من في القبور نمیتونی ای تو محمد که با مردگان سخن بگین حرفت بشه من اون مردگان سخن خودت به مردگان من في القبور اون کسی که در قبره هست این آیات برای چی نازل شده چرا الله به محمد صلی الله علیه و سلم داره میگه که این مردگانی که زیر خاکن مرده ان نمیشنون نمیبینن چرا علت چیه چی میخواد الله بهمون بگه میخواد بگه اونجا نماز نمیخونن روزه نمیگیرن مسلمان همه کس میدونه پس الله جل جلاله میخواد اعتقاد ما را اصلاح بکنه تویی که میری سر واسطه میخوای از اون مرده اون مرده نمیشته و نمیبینه در دنیای برزخی در سرای برزخی رابطه بین تو و برزخ قطع شده اونجا عالم دیگره دنیای دیگره اگر رسول الله صلی الله علیه و جواب سلامت رو میده چون فرشته موکله که سلامت رو بهش ابلاغ بکنه مطلقا که نیست اگر ای شده قرار بر این نیست که همه مردگان این طوری باشن میگه رسول الله صلی الله علیه و سر قبر مادرش با مادرش صحبت کرد یا سر قبر حمزه با حمزه صحبت کرد چون چیزی ما نداریم پس چه اسم و چه حقیقتی که به نسبت دادیم از اینکه میشتن حاجت ما را برآورده میکنن یا شفاعتگر ما در این دنیا میشن این مجرد یک ادعاست ما تعبدون من دونی الا اسماء ان سمیتموها انتم و ابائکم اینا رو خودتون اختراع کردید از جیب خودتون در وردید و الا در قرآن داره میگه چی مرده نمیشنو نمیبینه بوتا هم همینطور و ما به بمسمع من في القبور این نکلات تسمع الموت ما انزل الله بها من سلطان شما هیچ مدرکی نداری بیارید مدرکی در قرآن که بگه الله مرده میشنوه بیارید مدرک یک مدرک بیارید مرزین من دو تا آیه آوردم بر اینکه مرده نمیشنوه الله در قرآن در سوره اعراف میگه جل شانو ام لهم ای دیدن یبصرون بها ام لهم اذان یسمعون بها سوال دار میکنه الله از ما اس با نکوهش انکار اون شخصی که زیر خاک میتونه راه به ما که جواب بدید میتونه راه بره ام لهم ای دیدن یبصرون بها این به بحث بوتن دست داره حالا چه بوتش چه مردش فرقی نمی کنه می از زیر خاک در بیاد جواب بدید نه ام لهم اعیونون یبسرو نبی ها ببینه جواب نه ام لهم آذانون یسمعون باید گوش داره که از اونجا بشنوه. خب این سخن کیه سخنه الله جل شانه ما انزل الله به من سلطان این چیزایی که شما دارید ادعا می کنید و نسبت میدید بینهایی که خداشون قرار دادید دلیل شما برش نداری از وحی الهی نه پیغمبری گفته و نه کتاب آسمانی اومده این چینی حرفا رو زده در هیچ کتابش شما این چیزی این دعا رو ندارید اختراعات خودتونه این الحکم الا لله امر ان لا تعبدو الا ای الله هست که بر شما حکم میکنه کنه ملاو و شیخ و عالم و علامه و ولی و فلان اینها بر تو حکم نمیکنن اینها بر تو شرع نمیکنه ام لهم شرکا شرعوا له من الدين ما لم ياذن به الله کسانی میگه حسن برای شما شر بکنن که الله اجازه نداده ام لهم شرکا شرعوا له من الدين یعنی شارع الله الله بهت میگه چطور او رو بپرستید دعا بکنید نماز بخونید روزه بگیرید الله چطور است خاصه چگونه خاصه است و عبادت بکنید دعا را چگونه است خاصه رسول الله ص چطور دعا میکرد رسول الله شفاعت است کی میخواست حاجتش را است کی میخواست چطور از ما میخواست الله میگه شما هم همون لقد كان لكم في <تصفيق> رسول الله اسوه حسنه برای شما در رسول الله صلی الله علیه و سلم الگوینی کیاس آیا در زمان رسولان مزاری بود پیامبری از پیامبران میرفتن بر سر قبرش توافی بکنن نزاری بکنن نیازی داشته باشن ذبح بکنن زیارت ها بود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نه نبود؟ این خطاب الهیه ان الحکم الا لله بدونید که الله حک بر شما میکنه که چی حلاله چی حرامه چی درست چی درست نیست حاکم الله بر شما امر ان الا اياه امرش الله بر این بوده که کسی پرسیده نشه او الله نشه ما قاعده توحیدی کلمه توحید لا اله الا الله روی دو تا پایه داریم استواره یک پایه نفی دومی پایه اثبات همه جای قرآن این چیز ما میبینیم لا اله نفعه و الا الله اثبات یعنی چی؟ هیچ خدایی نیست هیچ خدایی نباید پررسیده بشه الا الله اثبات باید یک خدا فقط پر رسید بشه این قضیه ما در کل قرآن داریم یعنی تعریف کلمه توحید لا اله الا الله لا اله الا الله این اسمش که بگیم لا خالق الا الله لا حاکم الا الله اینا تعریفش نیک اشتباه درسته ولی مشکلمون کجاست تعریفش ناقصه شون مشركين مدعا داشتن لا خالق إلا الله قل لمن ما في السماوات والألب أو سمنها وزمين ما لكي يمي يا الله قابل داشتن الله رب العماني خالق ومالك مشكلة شون دار كجاب ودار عبادات بقتك ما بيقيم لا معبود بحق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق الله فقط حقك فرسيدة بشي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يدعون إن أمكسيك استداش ميزنان بغير أزالله أزال باسطة قرارش منه باطله إن معناه كه نه که خدا شناسی خدا پرستی یک تا پرستی یگان پرستی خداشناسی وجود داشته نه که همه خداشناس بودن نه کسانی هم بودن که خدا رو نمیشناختن ما در این مشکل ندارید ما مشکلمون کجاست در تعریف ناقص کلمه توحید وقتی که بگیم هیچ معبوده به حق جز الله نیست لازمش چیه اقرار به یکتایی خداوند لازمش خداشناسی شناخت الله اینجا هست درش ولی در این تعریف نیست در اینجا دیگه معبودیت الله وجود نداره وقتی که ما بگیم خالق جز الله وجود نداره الله نخواسته بگه که خالق جزء ما نیست چون همه میدونن آفریدگار الله ولی مشکل در کجاست در عبادت این ذہبت سخنان یوسف به اون دو تا زندانی الله عزتون خواسته که کسی جزءو را نپرسید با هر اما را الله تعبد الا ایا الله فقط اله حق معبود حقه که باید پرسیده بشه الا ایا لا اله الا الله قبل نا في اما را الا تعبد عبادتی نباشه معبودی نباشه که پرسیده بشه الا ایا الا یک معبود به حق و اونم کی الله این تفسیر کلمه لا اله الا الله که ما بعد از نماز مأموریم که بگین از جمله اذکار لا اله ایلالله وحده و لا شریک لا اله الملک و لا حمد و حی و ایمیت و لکن شیخ چنانچه در اذکار داریم ده بار بعد از صبح و ده بار بعد از مغرب و غیر از اون دیگه یک بار گفتنش بعد از هر نمازی این معنای حقیقی لا اله که باید هر مؤمنی بدونه معبوده حق جز الله نیست ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلم این همون دینی که قیمت خودش ارزش داره برای خودش، جایگاه داره برای خودش، این دینی که الله قبول داره از مردم، این دینم که الله داره معرفی میکنه به شما با یوسف، این دین درستیه، این دینه راستینه. دینه دین راستینه، دین ابراهیم، ذالک الدین القیم، این دینه، این دیانته، ولکن اکثرا ناسی لایعلمون بلکه این بیشتر مردم نمیدونن در جهلا از این قضیه، دروس یعنی قضیه را الله همیشه در قرآن ما داریم ده ها بار در قرآن تکرار میکنه بیشتر مردم مشکل دارن بیشتر مردم راه راست را گم کردن بیشتر مردم از الله غافلن این خطاب الهی را ما داریم اینکه بیشتر مردم فلان کار را انجام میدن مدرک نیست مدرک چیه مدرک قال الله و قال رسول اون چیزی که الله گفته به رسولش و پیغمبرش گفته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده صلی الله علی محمد و محمد